سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی تزکیه نفس با تودد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه جلسه هشتوم. الحمد لله رب العالمين. السلام جلسه هشتم پر رحمت و رحمان رحیم الحمدلله رب العالمین الصلا و و سلام علی سیدنا و نبی نام محمد و, و علا آله تیبین تاهرین المعسومین لا سیما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام و من السلام سلام و لکه سلام و علی که السلام سبحان ربك رب بکرد عما اما یسفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمين السلام عليك اي النبي ورحمة الله و السلام على الائمه الهدين المهديين السلام على جميع انبياء الله و وملائكته و اجمعين السلام علينا و عباد الله الصالحين السلام علي, علي امیر المؤمنین السلام علی صدیغت الشهیده السلام علی الحسن و الحسین شباب اهل جنه اجمعین السلام علی علي بن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باغر علم النبیین السلام على جعفر بن محمد السادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علی الجبد السلام على علي بن محمد الحاضی السلام على الحسن بن علي الذکیہ الاسکری السلام على الهجت بن الحسن القائم قال الله تعالی فی کتابه بسم الله الرحمن الرحیم و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها خداوند به بزرگی و عظمت و عنایت خودش انشاء الله توسلات و عبادات و ارزه این چند شبه همه شما خاهران و برادران رو به لطف و کرمش به شایستگی انشاءالله قبول فرماید دوتا سوال به دستم رسید اجازه بدید من اینو خیلی فشرده جوابشو ارزو کنم بلگردین سر بحث پرسیدن اگر خدا در قرآن فرموده قل لا اسالکم علیه اجرن الا المبدت فالغربا در جاهای دیگری هم در قرآن هست که <تصفيق> خدا به انبیا میگه به مردم بگو من از شما مزد رسالت نمیخوام پس اینجا چطور میگه که مودد همینطوره در سوره شاعرها خداوند از به پیغمبر اسلام میفرماید بگو من از شما مزد نمیخوام مزد من بر خداست ایشون مرغوم فرمودن پس در این آیه که بند دیشب خوندم و روشم استدلال کردم که انشاءالله ادامه شم میدین پس خدا میگه که بگو رسالت نمیخوام مگر مبدت بر اهل احلالبه این دوتا با هم دیگه مقایرن متناقضن یا نه جواب یک اول برای کسی که قرآن رو قائل ما یه مطلب میگین دوم کسی که حتی فرص خونید قرآن رو هم قائل نیست مثلا یه مسیحی اگه به خادشکال کنه یک یهودی به خادشکال کنه که این اعتقادی که من و شما به قرآن داریم او نداره اینا یا نه. کسی که قرآن را قبول دارد خود قرآن میگه اصلای تدبرون القران ا من اند غیر الله لوجد فیه اختلافا کسی را اگه بنا بود این کتاب خدایی نبود بله اختلاف داشت تناقض داشت این کتاب چون خدایی تناقض نداره اما در عین حال از نظر کسانی که بخوان منهای این باور و منهای این اعتقاد نگاه کنن از دید اونها چی بگیم؟ بسیار خوب بگیم ببینید استثناء منغطه و استثناء متصل در ادبیات عربی و فارسی چیه؟ خوب دقت بفرمایید استثناء منغطه یا متصل حکم یکیه فقط فرق از نظر انقصا یا اتصاله مثال میزنم ما هم تو فارسی داریم هم تو عربی در فارسی مثال بزنم شما تو عربی خودتون دقت بفرمایید مثلا فرض بفرمایید که این مثال دارم میزنم جدی نگیرید این حرفی كلام میزنم بگم فردا شب همه شما افطار مهمان منید از کردم مثال است و جدی نگیرید بله حالا اگر بگم فردا شب همه شما افطار مهمان منید بعد از نیم ساعت بگم به استثنای فلانی و فلانی و فلانی یه وقت میگم به استثنای همه حالا این مزر این حالت است غلطه چون در ادبیات مثلا بگم به استثنای مثلا خاص نمید ببخشید خانم ها چون جای پذیرایی برای خانم ها نیست یا ببخشید به استثنای آقایون فقط ممکنه مجلس پذیرایی خانوماست این استثناء رو میگن استثناء منقطه یعنی حرفی که اول زدیم قطع کردیم بعد استثناءشو ذکر کردیم بعد از نیم ساعت یک روب یا یه سری فرض کنید جلسه دو ساعت چیل کشیده آخر جلسه گفتن به استثنای پلانی ها اینو میگن استثنای منقطه استثنای متصل اونه که بلا فاصله میگه همه مهمانه بنید به استثنای فلانی اینو میگن استثنای متصل خواب قرآن معمولا استثنا به کار برده در برخی امور یا به کار نبرده فرابان من جمله میگه من مزد نمیخوام من از شما توقعی ندارم الا محبت اهل بیت این دو معنا داره یکی اینه که اگر برای کار پیغمبر مزد احتساب کنید مزدش چقدره از خود پیغمبر اول شاهد بیارم این روایت رو شیعه و سنی به اتفاق نقل کردند که وقتی پیغمبر به جنگ تبوک میرفند آنها جنگی که امیرالمؤمنین المؤمنین شکر نکردن علتشم این بود که جبرائیل وحیا برد که یا رسول الله منافقین نخشه خطرناکی دارن در غیاب شما میخوان مدینه رو به هم بریزن تنها کسی که میتونه جای شما باشه و مدینه رو حفظ کنه امیر المؤمنینه. که حضرت موندن همونجا این حدیث معروف انتمنی به منزلت حارون من موسا الا انهو لا نبی بعدی رو حضرت فرمودن وقتی پیرامیر المؤمنین سپاه اسلام رو داشتن بدرقه می‌کردن، گریهشون گرفت که مشکلاتی که جامعه برای ما درست کرده، من نمیتونم همراه پیغمبر باشم، کمکش کنم، مجبورم مدینه بمونم. بشن گریه میکردن تنها جنگی که از ثانی شرکت نکرده. اونم هم یه همچم موضوع مهم می بوده. پیغمبر این حدیث رو فرمودن. اینو خوب دقت بفرمایید. هم هم سنی نوشته. فرمودن یا علی لا ان الله بک واحد خیرون لکم ما طلعت علیه الشمس علی جان، یک نفر به دست تو هدایت شود از اونچه که آفتاب بر او میتابد این برای تو بهتره آفتاب فقط بر زمین نمیتابا یک نفر هدایت بشه چقدر ارزش داره خود پیغمبر خدا با اون مقام 85 کیلومتر راه رو از مکه تا طائف پیاده رفتن مردم راش ندادند و چهارو وادار کردند کردن سنگ و حضرت بزنه حضرت کنار دیوار باغی تکیه کردن کارگری اومد بیرون و باشون با صحبت یا چی شده و حضرت فرمودن و او هم ایمان آورد و حضرت برگشتن به پیغمبر گفتن یا رسول الله این سفر شما چگونه بود؟ حضرت فرمودن خیلی پربار البته این هم توجه داری که پیغمبر مبالغه نمیکنه و مای انتقان الحواد جز حق چیزی نمیگه. یک نفر به دست پیغمبر هدایت شده فرمودن این سفر خیلی پربار و پربرکت بود خب حالا اگه ما بخوایم برای این پیغمبر که 23 سال چه کرده است مز معین کنیم چه مزدی میتونه باشه چرا میگه میگه مز نمیخوام ما یعنی مگه میتونید مز شما من بدید مگه میشه مقایسه کرد اگر میخواهید از این دید نگاه کنید محبت به اهل بیت بکنید پس این استثناءست و به این معنی که من باز مزد نیست برای من چون محبت هلالویت برای خود شماست یعنی من دیشبی نکتر اشاره کردم که اگر خداوند میفرماید پیغمبران پیغمبرانو فرستادم که چه بکنم مردمو وادار کنم که عبد من بشن عبادت کنم دعیان الله بشن خود پیغمبر از مردم چی میخواد پیغمبر از مردم پول میخواد قدرت میخواد مقام میخواد وقتی که در جریان شبابی طالب اومدن پیش از ابو طالب کفار قریش گفتن هر چی پول میخواد بهش میدیم زن میخواد بهترین دختر عرب رو انتخاب کنه ما به ازدواجش در بیاریم قدرت میخواد پادشاه ما بشه ما همه گردن مینهیم که او بشه پادشاه ما بت‌های ما رو نکوبه دین ما رو نکوبه پیغمبر چی فرمودن هممون میدونیم آفتاب رو در دست راست و محتاب رو در دست چپ کنایت شرق و غرب و عالم به من بدید پس پیغمبر چی می‌خواد هدایت مردم رو میخواد. پیغمبری که جز هدایت نمیخواد میگه میخوای مزدمو کف دستم بذاری؟ یعنی چی؟ یعنی هدایت بشی، پس محبت اهل البیت داشته باشی. پس این منافات با این نداره. از این نقطه رو عنایت بفرمایید. بعد فرمودن که در اصول کافی حدیثی هست که از امام باقر اگر کسی اظهار محبت بکنه ولی عبادت نداشته باشه، محبت فایده نداره. بله. بنده مقرر روایت رو اینجا خوندم. از حفصم الان براتون میخونم. ان بله قیل علی ابی عبدالله علیه السلام اینا از امام صادق از امام باقر هم دارین همینجا من خوندم دو سال قبل شب عاشورام خوندم قیل علی ابی عبدالله عليه السلام ان قوما من موالی که یلمون بالمعاصی یقولون نرجو قال کذب ولیس لنا بموال اولئک قوم ترجحت بهم الامانی من رجا اشیئا عمل له و من خاف من شیء حرب من به امام ارشدم آقا یه عده میگن دوستار شما این ولی معصیت میکنم و میگن امید داریم حضرت همون دروغ میگن اینا دوست ما نیستن دوستان ما کسانی هستن اون چرا که به او امید دارن عمل کنن اونی را که از او بیم دارن فاصله بگیرن این شعر امام صادق رو من کرارن اینجا خوندم تأصل اله و انت تظهر و حبهو حاضال عمری فلسعال بدی او لوکان حبو که صادقن او، این المحب لمن یحبو متی او انل محبت لبنیحببه متی او همینجا بندی مثال رو زدم گفتم اگر من ایکس را دوست داشته باشم و بدونم آقای ایکس فشار خون داره بعد بهش میگم اجازه ببددیدی هی نمک بریزم رو غذاش میگه آقا اقابراان سمه میگم آخه بین نمکه من دوستت دارم میخوام نمک رو قضاش بریزم. خواه این دوستی با عمل جور در نمیاد اگر کسی امیر این رو دوست داره باید ببینه علی از چی میخواد و اینا درسته؟ اگر ما میگیم حب خدا و حب اولیای خدا نه به معنی لغلغه زبان بله خب باید نشانی داشته باشه این که کرارن بحث کردیم اشاره شده حتی من این شعر رو باز به یه مناسبتی اینجا خوندم حاجب شاعر میگه شعری در مدح علی سرودم حاجب اگر معامله حشر با علیست من زامنم هرون که تو خواهی گناه کن کو فردا خ... شب خواب دیدم امیر رو حضرت فرمودن حاجب شعر تو دو اشکال داره اشکال مثله اول حاجب اگر معامله با هش با علیس. اگر چیه؟ بگو حاجب یقین معامله هشت با علیس دوم چرا گفتی من رامنم هرون چه تو خواهی گناه کن بگو شرم از علی کن و کمتر گناه کن حاجب یقین معامله هشت با علیس. شرم از علی کن و کمتر گناه کن ما نمیتونیم نؤمنو به بعضن و نکفر رو به بعض بشیم آقا ما یه قسمت آیه رو بگیریم قرآن گفته خدا نیست قرآن گفته لا اله لا اله نیست خدایی اما اگه دنبالش رو نگفتیم الا الله لا اله انکار خداست اما الا الله رو گفتید اثبات فقط خدایی اللهه یا ما رمیت از رمیت تنها رو گرفتید خب این میشه جبر لیسل انسان اینا یه مقداری دقت همه جانبه احتیاج داره الله خب این همه جذبه بدید امشب به رسید رسیده تا حدودی تو همین زمینه لازم فشرده جوابش رو ارزو کنم میفرماین وقتی در سوره ساد ما راجب خلقت آدم و مسئله سجده به قضا آدم و رنده شدن ابلیس ابلیس به خدا میگه که به من مهلت بده. خدا مهلت داد. خب چرا خدا به ابلیس مهلت داد تا پدر ما رو در بیاره؟ ما چه گناهی کردیم که بخوایم پاسوز ابلیس بشیم؟ حالا این ایشون نوشتن من اینجوری میگم خدا و ابلیس با هم دیگه حساب مساوای دارن. به ما چی این وسط ما رو مثلا بعده المصالحه کرده خدا به ابلیس میگه مهلت میدم ابلیس هم بیا پدر ما بسیار خدا رحمت کنه. یه بزرگواری رو یه وقتی خدمتش بودیم یه چند نفرم صحبت می‌کردن صحبت اون شعر اون خانم کذایی شد که گفته بود که عجب صبری خدا دارد بعد یکی گفت که در محضر این استاد گفت که من اگه جای خدا بودم چنین میکردم. کردم و اگه جای خدا بودی همین کار رو که خدا کرده چون خدا هم همه بهتر ما چون جای خدا نیستیم اینجوری خیال میکنیم اگه ما جای خدا بودیم اول این جواب اجمالی جدلی مزاحی رو دارم ارزم کنم اگر خداست خب می چیکار چه کار بکنه خداوند اگر ابلیس را قرار داده است پیغمبران و ائمه در مقابلش قرار داده ما یک مرحله درونی فردی داریم یک مرحله اجتماعی بیرونی در مرحله درونی فردی تقاضا دارم اینجوری خوب دقت کنید به بحث تزکیه نفس ما خوب مربوطه لذا رفتش میدم بحث میکنیم میریم جلو دقت بفرمایید ما در درونمان هوای نفس داریم یا نداریم به جهت هوای نفس انگیزه های شهوانی گناه میکنیم آلوده میشیم اما عقل وجدان و فطرت الهی هم داریم یا نه یعنی مثل دوتا کفه ترازو شده یک کفه ترازو عقل ماست وجدان ماست یک کفه ترازو هوای نفس ماست ما این که کدوم یک از این دو کفه رو سنگین میکنیم حالا سوال اگر خداوند فقط کفه عقل رو به ما داده بود هوای نفس نداده بود ما انسان بودیم یا فرشته بودیم ما فرشته بودیم انسان نبودیم اگر فقط به ما هوا داده بود عقل نداده بود ما حیوان بودیم خدا خواسته انسان بیافرینه تو مرحله بیرونی هم همینطوره خدا پیغمبر گذاشته کسی انبیاء کسی اولیاء کسی سلحا کسی دلسوزانه در طول تاریخ پیروان انبیا و اولیا کفه شیطان من اگر شیطان هست میفریو بس پیغمبر و امام ماست که داره هدایت میکنه چون بناست انسان را بعدی باشه این حدیثی است که امیرالمومنین در جلد 11 وسایل شیعه فرموده این حدیث و دقیق میفرمایید خوندم براتون حالا سوال مجبورم تکرار کنم این الله تبارک و تعالی ملا الملائکه عقلا بلا شهوه خداوند ملائکه رو مسلط کرد به عقل بدون شهوت ورک کبل بحائم شهوتاً بلا عقل بحائم رو حیوانات رو شهوت بهشون مسلط کرد عقل دیگه بهشون نداد ورک کبه فی بنی آدم کلته ما به بنی آدم هر دوتا شده سمن غلب عقلوهو شهوته صحوه خیبان من الملائکه پس اون کس از این بنیادم که عقلش بر شهوتش غلبه یابد او از فرشتگان بالاتر فرشته باید اینو سجده کن و من غلبه شهوتهو عقلهو فهوه شر من الوحائم اون کس که شهوتش بر عقلش غلبه کند او از بحائمم ترستر و بدتره که مولوی اینو ترجمه کرده در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید یک گروه را جمله علم و دین بود او فرشته و نداند جز وجود یک گروه دیگر از دانش توهی همچو حیوان از علف در فربهی او نبیند جز که استبل و علف از شقاوت غافل است و از شرف وان دیگر آدمیزاد و بشر از فرشته نیمی و نیمی زخر نیم خر خود مایل سفلی بود نیم دیگر مایل علوی بود وین دوگانه در میدان نبرد تا کدامین غالب آید در نبرد عقل اگر غالب شود پس شد فزون اون بشر از فرشته در آزمون شهوتر غالب شود پس کمتر است اون بشردان از بهایم کمتر است پس اگر خدا ابلیس رو قرار این ابلیس اگه نبود یا ابلیس دیگه خدا قرار میداد چون نظام انسان اینه ابلیس باشه هم بیان در وجود ما هوای نفس باشه عقل و وجدان هم باشه پس این جهت نه ما وجه المصالحه ابلیس نشدیم ما می توانیم در این میدان مسابقه و در این میدان درگیری و نبرد بین حق و باطل یا تحریر دو کفه ترازو کرد کردم کدوم یکی رو بگیریم و چیکار بکنیم فرمودن این که در قرآن آیات مکرر راجب توبه و عفو و گریه و انابه و این مسائل در پیشگاه خدا چون به شکلیست که کن تا سوال در دو تا سوال خلاصه میشه آیا همیشه آدم این حالت رو احتیاج داره یا اگر به جایی رسید که احساس کرد که خب دیگر همدلاله آدم خوبی شده دیگه احتیاج نداره نه خیلی همیشه احتیاج داره همیشه چرا؟ دیشب خوشبختانین رو من اشاره کردم گفتم یه زمان من به خودم که مراجعه میکنم میبینم خیلی در زندگی روزمرم امکان اشتباهات من دارم ما وقتی میگیم گناه که فوری ذهنتون سراغ آدم نره ذهنتون سراغ دزدی نره ذهنتون سراغ مشروبنوشی و غماروازی نره نه اینا الله دیگه از همه ماها دوره در این وادی ما نیستیم اما حسنات الابرار سیعات المغربین یه داد سر همسرت کشیدی ظلم چرا این کار کردی بله اینا لغزشه. این انسان رو ببینی یه نردبان بلند رو در نظر بگیرید شما هی این پله ها رو میخواید طی کنید تی کنید تی کنید برید بالا یه دونه پله رو پا رو بعد میگذارید این پرت پرت میشید یه پله پایی نیمدید دوباره افتادید پایین. یه وقت من این مثال زدم نمیدونم اینجا بود یه جای دیگه بود. گفتم یه بازی و جا این مهره ها رو میگردوندن به می یه جا میرسی یه دفه برمیگشت عقب بازی چی میگن؟ مار پله یه دفعه برمیگردن عقب. پناه بر خدا ما یه دفعه برگردیمقب. این یه برگشتن برگشتنقب نه اینکه فقط کسی دوزی کنه برمیگرده عقب. حتی استاد ما به ما اینجریات میداد و راستم میگه. می گفت اگر شما داری رانندگی میکنید دقت بفرمایید رانندگی میکنید طبق نظام آین نامه راهنمایی رانندگی در همه دنیا رسم برینه کسی از فرعی بیاد تو اصلی مکس کنه خب یه قانون بین المللیه و صحیحش هم همینه چون اون که داره تو اصلی میره خب به سرعت داره میره شما از فرعی میای قانون اینی که که مکس کنید ماشین نمیاد بیای شما این دقتو نکنید از فرعی دارید میای اصلی بدون دقت سری خودتون آوردی تو اصلی یه بنده خدایی که تو اصلی داره رانندگی میکنه میره او رو این که خب راه منه دیگه یه ترمز بد میکنه سرش یه ذره میکنه جلو داشپور ماشینش یه حل میکنه. شما ظلم کردی در هه انسان چرا ذیتوش کردی؟ کیه که بگه از این اشتباهات ما در روزمره نداریم. این جور چیزها اگه جمع کنیم خیلی وقت این دقت لازمه در زندگی. این که ما میاییم میگیم الهی العف خدای ما رو ببخش یعنی تصور این بشه که چقدر ما مگه دزدی کردیم که اینجا داریم میگیم الاهی العف اگر کسی دزدی کرده باشه الاهی العف اون افش اینه که بره پولش رو سایبش بده همینجا ما بحثش رو کردیم در رابطه با توبه حق و باید بری بهش بدی حق الله، نماز غذا دارم بیا اینجا بگم العف و خدا که اون نماز غذاه ب اینا که دیگه روشنه که دیگه آخه این همه جلسات این همه بحثایی دینی دیگه اینا باید داری مردم جا افتاده باشه ما حقیقتاً یک برکتی در جلسات امام حسین و محافل مذهبی داریم که یکیش همینه که دیگه به برکت این بزرگواران تو مجالس نوع این مسائل توضیح داده شده است اما یه مسائلی من حق الله مثلا بین خود و خدا دقت میکنم میبینم خیلی انشاءالله حق و ناس به این معنی پول کسی رو بلند کرده باشم حق به کسی به این معنی ندارم خیلی خوب اما اگر در تعالی معنوی دقت کنم از این اشتباهات روزمره چی یک حرف من پشتر مردم زدم زندگی مردم رو به هم ریخت یک حرف اونم چجوری مثلا فرض کنید آقای ایکس رو آقای اگرک خیلی هم حساب میکرد رو من هم حساب کرده از من میپرسه نظر شما روای گریک چیه نمیدونم از من چیز نپرسید اینو بدبین میکنه همین بدبین میکنه این بدبینی دو تا خانواده رو به هم میریزه چرا این دقت انسان وقتی به خودش میاد تو این وادی میگه وای بر ما ما کجا هستیم لذا از این دید خواهرام و برادرام کسی جرئت نداره بگه من کالف گفتن احتیاج ندارم منی که به جای که اینجور اصم حرف رزنم لذا هرچه معرفت انسان بیشتره اناوش و خدا بیشتره خدایا کمکم کنم کن. دو به دو معنا یکی این که گذشتم و جبران کن دومی به این معنی که کمکم کن من این جزئیات رعایت کنم یعنی دیگه الان برای الله بنده و شما رعایت در این که آقا دیگه غمار نکنیم آقا شراب نخوریم اینا انشاءالله حل شده گفت مروحوم آیت الله بروجردی معروف معروفه به تقوا بود معروف به زهد بود معروفه به پارسایی بود نوع کسانی که ایشون رو دیده بودن در عظمت تقوی ایشون تردیدی ندارن ایشون اواخر عمرشون رئیس حوزه و مرجع و عالم و چقدر شاگرد پروریده و هی hey, می اومدن خدمتی ایشون حالا احوال ایشون گفت التماس دعا دعا کنید عاقبت به خیر بشن استاد بنده میفرمودن من به ایشون یه روز عرض کردم که آقا شما دیگه حالا به بعد آقابت به خیری یعنی چی گفت خیال کسی مثلا یه بار دیگه شیطان میاد به من میگه شراب بخور اینو دیگه من مشکل ندارم اما یک لحظه هوا یک لحظه مقام یک لحظه یک بی‌انصافی ها و حق‌کشی ها خب بله من آقابت به شر شده سه روز مونده به فوتشون ایشون گفته بودن که کفن من آماده کنید مشخصات رو فلان من فلان روز فلان ساعت خواهم مرد اون سه روز گفتم فقط یک ذکر رو ایشون هی تکرار میکرد مرحوم های تلایه و رو شنیده باشید خلص العمل عمل اینن نقاد خبیرون بسیر گفتن صبح شب این ذکر میگفت خلص عمل عملو خالص کنید. کنی اونی که میخواد نقادی کنه اونی که میخواد فررافی بکنه خبیرون بسیر خیلی خبیره آقا یه سکه قلابی بنده دارم دوتا زرگره یک تلافروش یه زرگری این خیلی بلد نیست من احتمال که کلا سرش رو زنم این سکه چارده، تلای چارده ایار رو بگم هیچده ایار او هم متوجه نشه امکانش هست یه جوری رد میشم اما میگه اون یکی حواس جمع باش او یک صد و هم تشخیص میده مرهوم آی برو جردی اواخره اون میگه ننقاده خبیرون بسیر خدا است و ما با خدا طرفیم یک ذره هوا تو عمل من باشه یک ذره منیت تو عمل ما باشه یک ذره انسان بی اینجور جاها رسید لذا تا دم مرگ هی داره میگه الاغی الاه الاغی توکل به تو الاغی پناه تو چرا پیغمبره با اون عظمت این ها دیگه جز بحث نمونه نداره ببینید ام سلمه همسر لایق پیغمبره زن متدگی نیست میگه پیغمبر حجره من بود نیمه های شب از حجره بیرون من نگران جهان حال پیغمبر بودم پسترشون رفتم دیدم وارد مسجد شدن حجرات پیغمبر وقتا به مسجد بوده دیدم تو تاریکی شب تنها سرشون رو به سجده گذاشتن تو سجده دارن میگن الهی لا د اله نفسی طراخ تل عین ابدا خدای یه چشم هم زدن منو با حال خودم رها نکن و زار زار گریه میکنه تو سجده من از گریه پیغمبر به گریه افتادم صدای گریه منو پیغمبر شنیدن سر از سجده برداشتن برگشتن دیدن منم فرمودن امه سلام تو چه میکنی اینجا گفتم یا رسول الله شما اینطور گریه میکنید اخی خواهر من مادر من اینا رو یه مقبر با مطالعه کنیم اجبه یکی از است با مدرک براتون بگم این مدرک حرف نزنم. اصول کافی جلد دوم باب کبر حدیث شماره دو کبر و اجبه فرقش رو میدونید کبر خود بزرگ فروشی نسبت به دیگران بنده اینجا نسبت به شماها خودم رو بزرگتر جلوه بدم این تکبره این کبره اوجبه من پیش خودم خودم بزرگ حساب کنم اصلا مقایسته با کسی نکنم بنده تو کتاب خونه نشستم دارم مطالعه میکنم هیچ کسم اینجا نیست پیش خودم بگم خیلی میفهمم آمنم کسی هم ها. اینه میگن اوجب در اوجبه و کبر این خود بزرگ بینی مشترکه. فارغش اینه که در کبر خودمو نسبت به دیگران بزرگتر می‌بینم در عجب پیش خودم در کتاب کافی جلد دوم باب کبر و عجب حدیث دو از پیغمبر میگه پیغمبر فرمودن حضرت موسی علیه السلام ابلیس رو دید و ابلیس گفت ابلیس چه گناهی که اگر بنده ای به این گناه مرتکب شد تو خیلی خوشحال میشی و خیال جمع میشه مثلا زنا باشه غمار باشه چه باشه چه باشه میگه ابلیس به حضرت موسی گفت اگر بنده ای به اوج رسید من خیالم راحت میشه میگم دیگه این سر چون به جایی میدسه خودشو بزرگ میبینه خودشو بزرگ دید میگه من که دیگه تو احتیاج ندارم من که دیگه ناله احتیاج ندارم من که دیگه کتاب خوندن احتیاج ندارم من که دیگه جلسه رفتن احتیاج ندارم من که دیگه نمیخوام من که معلم نمیخوام من که راهنما نمیخوام حلقین امروز آقای رشته است در دانشگاه ها گفتار درمانی گفتار درمانی با تلقین و گفتار درمان میکنند. کنن کما که با گفتار و درمان بیمار می کنن. این حالا مطرحه آقا کبر و اوجوه حلقین به خودش که من کسی هستم ما کی هستیم لذا بل ما همیشه احتیاج داریم بعد پرمودن خب حالا شب و روز فرق می نه شبم باید این رو انابه روزم داشت اما این که بیشتر تو شب میگن معمولا روز کار و مشغله و فعالیت دل شب اون خلوت کردن با خداست یه رازی داره از این جهت وگرنه هر آنی انسان باید به این معنا توجه داشته باشه و یه نکته دیگری فرمودن که حالا اگر کسی بگه ما چه لزومی داره مثلا بریم توی جمعیت بشینیم که توبه کنیم خب تنها تو خونه میشینم ولی بله میشین کارو کرد اما یه فرقی داره فرق چیه برخی عدیه رو مخصوصا گفتن بریم تو جمع شما در آداب شب قدر از امام صادق علیه السلام داره که حضرت فرمودن یکی از معصومین علیه مسلام مختصر کسالتی داشتن فرمودن بستر رو منو ببری تو مسجد تو جمع چرا؟ که اگر یک نفر نالش گرفت یک نفر ارتباطش برقرار شد خدا به خاطر او به بقیم برسونه و اگر همیشه اینجوری باشه خدای نکرده خطر ریا هست خطر این شیطون خیلی قویه گاهی از اون بر ما رو بیچاره میکنه لذا گفتم مخصوصا مثل شبهای قدر رو تو جمع باشید همناله رشید اما کی گفته نماز شب رو شما جمع بشید بیه تو مسجد دوره هم نماز شب بخونید نه اینه کسی نگفته تنها تو خونت بخون اما اعتکاف رو جمع بشید تو مسجد مگه اعتقاف عبادت خاصه برای خدا نیست چرا گفتن جمع شید تو مسجد دو جهت داره یکی شعار دینیه از نظر شعار دینی خودش یک عباحتی برای غیر مستدینین جلوه میده خواهی بندگان خدا ببینید از خوابش میزنه خوراکش میزنه استراحتش میزنه چه داره میکنه که این خودش یک جمبه ارشادی و تبلیغی برای دیگران میشه یه جهت دیگرم همونه یکی که ارتباطش برقرار شد چه بسا اثری که خدا با اومیده برگیم بده چرا در نماز باران؟ اینا رو دقیق داشته باشیم میگن اگه باران نیامد میخواد نماز باران بخانید پیر مردا و بچه‌ها رو جلو اندازید وقتی میخواید مستحب بگه برای نماز باران یعنی آدابش اینه که برن بیرون شهر دیگه زیر آسمان پیر مردا و بچه‌ها رو جلو اندازید شما پشت چرا یعنی خدای این بچه‌ها که گناه نکردن به خاطر این بچه‌ها به ما لطف کن این پیر مردای قد خمیده محاسن سفیدی که دیگه یه عمری در خانه تو اومدن لذا در اشعار مناجات هم زیاد داره به اشک دیده طفلان معصوم و آه سینه پیران مقدس مذ... اینا راز داره که مطرح کردند و گفتند لذا ان الله سعی کنیم شیطان به صور گوناگون در ما نفوذ نکنه ارتباطمون رو با خدا قطع نکنیم توسلاتمون رو از میان نبریم انابه و توبمون رو فراموش نکنیم ادامه بحث کارینم در راستای بحث و طول کشید پریشب قبل از بحث دیشبی بی این شکل چون سوال هم از دوستان زیاد رسیده بود که من جنبه عملیش رو بیان کنم. اجازه بدید وقتی که امشب باقی مونده، اون حرف رو تکمیل کنم. انشاالله الله سه شنبه، سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه این سلسله بحث ما سه شب دیگه مونده. این سه شب نوع این سوالاتی هم که الان هم برسم رسید دیشب هم خیلی آورسیدن. چگونه ما خب به پروردگار و اولیاشو در دل خودمون زیاد کنیم خب قبول خب به خدا ارزنده است چه بکنیم ما محب بشیم خب به اولیا ارزنده است سلمان چی فهمیده بود که اونجوری شده بود ابوذر چیش بود که یه پارچه آتش بود مستی بهانه و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم یارب رب چه کشماییست محبت که من از آن یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم این چه جرعه ای بود که به ابوذر نوشنده بودن این چه ای بود از این جام که به کام سلمان ریخته بودند اینا دیگه سر از پا نمیشناختند ما نمیتونیم بنوشیم یا ما میتونیم چرا لذا در راستای این بحث پری گفتم ما برای اینکه بخوایم تذکیه نفس کنیم بخوایم تعالی پیدا کنیم کار نظری کار عملی تو بخش نظری چهار مطلب رو توضیح دادم رو میگم ادامش رو انشاء بحث کنیم یک باور این معنا که ما به کجا میتونیم برسیم قانع نشیم ما نگیم همین معنا که خدا نکرده عجبه آقا من که الحمدلله ما که دیگه حالا فرشتگانم باید بیان به من سجده کنن اون روز آدم سجده نمیکردن، خب آدم مجسمه ای بود دیگه ندیده بودن که من کی باورم به آقا من به کجا میتونم برسم به کجا میتونم دو باور این که کجا هستم من کیم آقا منی که اگر یک آن والله که سیره قسمه اینی که دارم به شما میگم باور دارم اگر یک آن خدا عنایت نکنه هم دیادم میره حمد که دیگه از اول بچگی دیگه نماز که میخونیم دیگه هم و هممون دیگه هم دیادمون میره بسم الله الرحمن الرحیم یادمون میره اگه خدا بخواد ما چیستیم که به خودمون ببالی این نور برق روی ما دارید نگاه می کنی یک آن بدون اتصال به کارخونه برق هیچه سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله الله اعلم اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها اگه یک آن بخواد نظر انایت شو ما هیچی. لذا یک من به کجا میتونم برسم، دو کجا هستم من کیم سه باور این معنی که برخیاب کجاها رسیدن که پریشب توضیح دادیم نسبتا مفصل چارمی باور این معنی که ارزش و همون عرفاستا اگه ما تو اون خط قرار نگرفتیم اشتباه کردیم ما. این چارتا رو گفتم به عنوان نظری و باور ما باید تو ذهنمون ایجاد کنیم خواب راه ایجاد این باور چیه باز باید به صورت جزئی مخصوصا تاکید کردم که ما نمیخوایم کلیگویی کنیم بریم اگر این باور ارزنده است راه ایجاد این باور چیه سه تا طرح رو امشب راهی میدم مختصری بحث میکنم که انشالله راه های عملیش هم باز بعد یک مطالعه کتب مربوطه با راهنمایی افراد مطلع عنوان دقت بفرمایید مطالعه کتب مربوطه با راهنمایی افراد مطلع آقا نمیشه انسان در این زمینه یه مقدار مطالعه نکرد به جایی برسه بالاخره یه مقدار وقت باید گذاشت ناز تنعم نبرد رح به دوست آشقی شیوه رندان بلاکش باشد این مطالعه یه زمان خود آدم حالشو داره آقا کتاباشو میگیره که حالا با افراد مطلع علت داره ارزم کنم یک زمان خودش حال مطالعه نداره یک سنت جالبی در گذشته همین تهران ما بوده که من الان میگم کسانی که تو این گلس شاهدن اونا غذابت کنن آقا افراد پخته سنگین سطح بالا مثلا فرض فرمایی در این تهران مرحوم آشدیانی مرحوم آشامتقی عاملی مرحوم شعرانی مرحوم رفیعی غزبینی و و و یک علمی قوی استخوانخورد خورد کرده آقا جلسات هفتگی منظم برای یه خاص داشتن یا نداشتن؟ خواهی مطالعه هست بگیر یکی کتاب رو می داره یکی او بنده خدا رفته یک عمر زحمت شو کشیده پنجات کتاب رو در سه جلسه برای جمعیت خلاصه کرده نوع کسانی که در اون جور جلسات زیر نظر این شخصیت ها تربیت شدند، خدا یا تو شاهدی شبهای من اینو شهادت میدم به اندازه ای که بنده برخورد کردم اینا آدمای خاصیم. تو هر سنفی، کارمنده تو کارمندیش عجیبه، بازاری تو بازاریش عجیبه، اداره تو اداریش عجیبه. عالم دینیه تو عالم دینیش بودنش هم عجیبه یعنی خب بالاخره ما خیلی دنبال آدم گشتیم به اندازه فهم خودمون تو ایران آدم پیدا کنیم بعضی ها آدم میبینه از را رفتنشون هستدنشون نشست و که این باید استاد دیده باشه ریشیابی میکنیم ریشیابی میکنیم بله این مدتی با فلانی بوده مگه میشه نه جلسه برم نه کتاب بخونم نه زحمت گوه دیر اومدم. زودم میخوام برم اووصلم ندارم منم برسم به اونجاایی که باید بم اینجا چی باید گفت یه تعری رو من شب نوزدهم با کنایه رد شدم ها ولی اینجا یه خصوصی تری وحتتر میتونم بگم این حرف مال من نیست مال یکی از بزرگانه دنیانی چقدر یه حرف قشنگه میگه آقا اقاخم مرغ را اگه در حالت عادی نگه داشتنی یه ماده غذاایی به درد بخوره به درد مردم میخوره اما این باید مرغش بردی زیر مرگ گذاشتی این 19 روز 20 روزه رو باید تحمل کنه اگر نکرد میگنده بعضی آدم تحمل ندارن بین را در میرن اینا رو از اول نگیری تو اون وادی نورید اینا نیان بهتره این مثل تخمرگ است که میگنده بوی گندش علتی که بعضیا تو مسیر دین میان بعد آقا خطرناک کتاب در علیه اسلام تو زبان فارسیک نوشته کتابه بیشتر سه سال نویسندش که من اسم نبرم عبدالدره مرده حالا انقدر دیگه روح شده بود این مدت ها خودش تو لباس طلبگی بود تو حوزه بود بعد از لباس در اومد شد ز بعد باترین کتابی که ما تو فارسی بر علیه پیغمبر اسلام داریم که آیات شیطانی سلمان رشدی از این گرفته مطلب جدیدی سلمان رشدی نگفته حالا ما تو این وادیان نیست بحثمون وگرنه من اون کتابو میآوردم فارسیشو براتون میخوندم نوشته سلمان رو براتون میخوندم یه همین حرفاش که این زده اونم اونجا گفته اینو این آقا گفته این آقا مدتها حوزه بوده طلبه بوده از لباس در اومد و همکارش اگه بگم پسر کی بوده تا عجب میکنید اما این همون تخمرگ نیم بندیش که مرغ نشد هیچی گندید یعنی برادر و خوهرم برای دینتون وقت بگذارید. یه مقدار مطالعه کنید، یه مقدار استاد ببینید، یه مقدار زحمت بکشید، یه مقدار تلاش داشته باشید. اگه می... وگرنه میخواهید در حد هم مرغ بمونید، بمونید، بحث دیگریش اگه میخوا در حد تخم بمونید بمونی، خیلی خب کسی هم کاری به شما نداره، مثل آمه یا مردم، ولی حیفا، آدمی که میتونه مرغ بشه، پرواز کنه، تخم نیم نمرود بشه، جلوی آدم قرار بگیره که بخوردش، میگه میخوام پرواز کنم. ما اگر میخواییم پرواز کنیم زحمت میخواد رنج و تلاش میخواد پس یک مطالعه کتب مربوطه اما با راهنمایی افراد مطلع چون بدون راهنمایی افراد مطلع که بسا من کتابایی رو بخونم که اصلا بد برداشت کنم منحرف بشم این که در روایات ما آمده است علم هجاب اکبر است یک معناش همینه پس ما عالم نشیم با کمال تأسف گاهی وقتا می بینیم یه حرفایی می‌زنن همین شب من از تلویزیون می‌شنیدم که یاد کردم زنگ بزنم بگم این علم حجاب اکبر رو داشت می کرد. می‌کرد می‌گفت ساده باشید آمی باشید بهتره تا اینکه بخوای خیلی بیاید تو دنیای علم بعد به یه حدیث استناد کرد که این حدیث نیست دروغه علیکم بدین لجائس شما یک کتاب حدیثی به من نشون بدید این حدیث دوش باشه که این پیغمبر اینو گفته اصلا این مال پیغمبر نیست اینو نسبت میدن به پیغمبر آرزو می‌کنم اخو احمد تو شما از پیدا کنید تازه اونایی هم که میگن علیکم به دین العجایز پیغمبر گفته همونا میگن پیغمبر گفت ببین پیرزن به اندازه خودش سر اخو این دروغ و حدیث نیست اصلا ولی برفرضم اگر باشد پیغمبر فرمودن که خدا رو چگونه شناختی باز این چرخ ببینید این به این کوچیکی گرداننده میخواد جهان ببین عظمت بی گرداننده میشه پیغمبر فرمودن علیکم به دین لا میگن اگرم اونایی که اینو ساختن به نام حدیث بگن میخواد پیغمبر بگه این پیرزن به خودش استدلال داره شما استدلالتون چقدره اما اومدن گفتن آقا علم حجاب اکبر مطالعه تحقیق فهم بر بررسی رو بذارید کنار سطحی قبول کنید برید جلو این هم تخمر موندنه سطحی باشی تخمر موندنه اما اگر بنا شد آمغی بشید خون دلخوردم ها میخواد به همین دلیل میگن بی خزر رح امکانش نیست تایی این مرحله بی همراهی خیر مکن ظلمات بترس از خطر تنهایی یک کمی مجبورم بادا باد برم تو حرفها کسانی که تو مقوله غیر عادی شاگرد تربیت کردن دو جور عمل کرده یک اونا رفتن سراغ شاگردا یعنی یک مرد ربانی یک عالم الهی بوده پونست تا شاگرد 20 سال سی سال در خونش رفتن اومدن و زانو زدن تو رو خدا از اسرار مگو به ما یاد بده یک ذره به اینا نگفته. اینا فراوانه در طول تاریخات تو زمان ما بوده اما خودش پاشتود از یه شهری رفته توی یه شهر دیگه در خونه ای رو درزده به خدا قسم بیمبالغه میگم. یکی از دوستان ما خیلی آدم پاکیست خیلی پاک من یک پارچه معنوییت این آدم رو میشونم خیلی از من بزرگتره میگفت ما مدتها دنبال راهنمایی بودیم معلمی بودیم واقعا یه مقداری چیزی به ما یاد بده خیلی همین در آن اون در زدم. 15 سال طول کشید. بعد از پونزه سال بریدم یک شب جمعی نصف شب بین خود و خدای خودم درکت نماز ما مزمان با سر تا یاکن عبود و یاکن استعین خوندم اش ریختم ناله زدم انقدر بعد از از آن صبح از شدت ای که شب کرده بودم حالم منقلب بود نتونستم تحقیبات نماز رو انجام بدم گرفتم خوابیدم ماطات تو گریه هم ت پیدا کردم که آخه یا امام زمان مگه صاحب ما نشتیم مگه آقای ما نیستیخم خب من مندم چه بکنم؟ من به دیگه اعتماد کنم؟ میگه من بعد از صبح خوابیده بودم خواب بودم. اینم تو اون شکلی دیگه با ما سمیمیست اینو گفت بگن اینار نمیگن منم دیگه بادا با دیگه این شبها به خاطر ناله هایی که هم منزدیم با هم دیگه دیگهلب ذهنم خصول کرد می شبین بگم منم که خصوصی میگم اینجا گفتن که اسمت خواب بودم. پس سرم اومد من از خواب بیدار کرد که بابا یکی دم در با شما کار داره. من از بس که دیگه خسته بودم گفتم حالی هیچ دیگه ندارم. گفت دم در مهمون اومدم دمدر گفت که دیشب چی خواستی از آموزمون؟ به کسی نگو ساکت بیا با هم بریم. تا روزی که من در جریان بودم اون بنده خدایی که راهنماییشون شده بود فوق کرد سی سالی آقا با اون راه بود. که این به من میگفت فلانی من یک ترک اولان در این سی سال از یه آقا ندیدم و رساند اینو به اونجایی که مخواست برسونه که بنده الان افتخار میکنم این آقا یه ساعت به من وقت بده چار رو من یاد بده لطف داره به بنده من افتخار میکنم خب بله هستم این جوری نیست که دست آدم رو نگیرن گاهی میرن دنبالش اما همون آقایی که اومد در خونه این آقا درزد والله قسم اگه اسم ببرم تعجب میکنید ولی مجاز نیستم اسم ببرم از سران معروف علمی ما من نشسته بودم خدمتشون هرچی از ایشون وقت با وقت ندارم برو قبول نکرد او میاد ناله میزنه میگه به من وقت بده میگه برو وقت ندارم این آقا رو میره در خونش در میزنه یک ما بخایم یه مقدار خواستن میخواد یه مقدار منطقه در این خواستن اونا چکار چرا بعد یار انتخاب میکنن ایستادگی داره یا نه اینم پونزه سال طول کشیده و بعد رفته سراغش نه این حالا من سه تا شبه ماه رمضان سه تا دو ساعت ناله بزنم بعد بگم آه خدا آخه ببیگی همه دیگه بس ندیگه حالا بده دیگه حالا کارم از خدا پناه بر خدا, پنابر خدا. جمش عشق میخواد آه میخواد ناله میخواد داد زدن میخواد توسل میخواد بی معنی که با این ایستادگی ها بعد ببینن این تلا رو وقتی میخوان از ناخالصی در بیارن من که ندیدم اینجوری میگن دیگه شد میگن اینو باید توی کوره نمیدونم حرارت خیلی بالا بذارن دیگه انقدر حرارت بدن بدن بدن ناخالصیاش بره حرارت دادن ماهام به شکل خاص خودشه یه مقدار برادران و خواهران کتاب بخونید کتاب بخونید اما چه کتاب بخونید راهنمایی بگیرید از افراد مطلع دو مجالست افراد این چنانی سینه مالا مال درد است ای دریغا مرحمی جان ز تنهایی به لب آمد خدایا همدمی همدم کسی که اینام البته چون گنج در ویرانه ها پنهان می شود کسی هم بخواد گنج ویرش بیاد باید یه مقدار زحماتی رو هم تحمل بکنه بکنه حرف کنه چه بکنه که اینا که تو مسائل ظاهری تمثیلی داریم اعزم کنیم باید یه مقداری زحمت بکشیم پیدا کنیم پیدا کردیم آقا نشست و با اینها یه مقدار تو زندگیمون با افراد الهی بنشینیم شخصیت های معنوی پیدا کنیم با اینها نشست و برخواست داشته باشیم حالا آقا کم نایاب پیدا نمیشه نسبی بین خود و خدا ببینید در چه جاهایی میرید میشینید یاد خدا، ذکر خدا، توجه به خدا عالم آخرت، عالم معنویت اون ارزش های والا در دلتون یه مقدار زنده میشه هی شب یه اشارهی کردم زغال بذاری کنار آتش کم کم آتش میشه ما کناری کی داریم میشینیم با چی افرادی میشینیم و همین جهت بعضی که در سیر سلوک قرار دارن حرام میدونن برای خودشون رو در شرکت, شرکت در هر مجلس عادی رو چون قفلت ایجاد میکنه حدیث شو بخونم حالا قالت الهواریون لعیسا علیه السلام من نجالس یا روح الله می دونید من تو این بحثا نمیرم دیگه تو بحث تذکیه نفس رو دیگه یه مقداری بعضی چیزاشو یه گوشه های جزو بدید بحث کنیم من نا یا روح الله با کیا بشینم با کی رفت آمد کنم من ی ذکر و کمل الله رؤیتو و کسانی بنشینید که رؤیت اونها شما رو به یاد خدا بندازه من ی ذکر کم رو و کمل الله رؤیتو رؤیتشون نگاهشون شما رو به یاد خدا بندازه و یزيد فی علمکم منطقو حرف که میزنن یه چیزی بر دانش شما اخزوده بشه و یرقب و کنفل آخرت عملو عملشونو میبینید آخرت رو شما رو بیاد آخرت بندازه رقبت آخرت رو در شما زنده کنه خب حالا بنده چهار نفر روز جمعه پا میشیم میریم حرام نیست دا اشتباه نشه نفر روز جمعه پا میشیم میریم توی پارک میریم توی پیکنیکی میریم مثلا فصل گرما کنار روز خونه خب نوش جانتون هیچ اشکال شرعی هم نداری در محدوده شرعی اما از این صبح تا شب چیت گرفتی؟ آقا جگ گفتیم خندیدیم آقا دلار چقدر بالا رفته چقدر پایین اومده آقا سکه امروز چند بود؟ آقا طلا چی شد؟ آقا با چه خبر آقا؟ چه خبر؟ من نمیخوام بگم آدم های خوشی باشید که هیچون مسئله مادی نباشید نخه بنده خودم اولین بار دارید اینجا از بنده میشنوید من زندگیمو از راه کار اقتصادی که خودم میکنم میگذاره چون میخوام از این کانال مطلقا تو زندگیم به خالت نداده باشم و الحمدلله کال دینی هم مجانیه یک قرون نگرفتم نمیگیرم و کار میکنم اما نه این که دیگه قرق بشم آقا اونچنان آقا سکه چقدر صبح سراغ سکه دلار؟ از سراغ دل دلار شده دیگه یا استاد بزرگی بود یه ایده خدمتشون معقول می‌خوندین یکی از اینهایی که با ما بود کارمند بانک بود صندوقدار بود آدم خوش‌صداادی هم بود فلسفه‌ام خوب می‌فهمید پیش استاد یه روز استاد به فرمود که همه‌شون قسمت که پول می‌گیره و پول میده نباشید دوره دور عوض کو گو چرا گوی دلت صندوق چون همش با پول سر کار دیگه با همش با پول یه مقداری هم اگه مجبوری کار دیم باشه روزی 9 ساعت هم اگه وقت نمی‌کنی یه نوار بذار آقا خدایی هست آقا قیامتی هست آقا امام حسینی هست آقا امام زمانی هست آقا اولیای الهی هستن ما احتیاج داریم این مسائل رو چون وقتی هر چه به گوش ما میخوره پول دلار سکه برد باخت تلقی تعالی مادی فقط اون که چشم میبینه در این محدوده خب این چشم و این گوش در این زمین ما رو پیش می‌بره ولی اگر خواستیم از اون طرف هم بیاین بشینیم با بعضی کسا آدم با بعضی یا مسافرت میره لذت اون مسافرت تا ده سال بعدم یادش نمی میره مثلا فرض کنی دیگه تو سفر دو ساعته توی اوتاخ بوده می‌بینی از نیمه های شب پا شده تو با عادت خودش میخواد مثلا نماز شب بخونه یه داره خودشو کنترل میکنه که گریه نکنه تا اینکه هم اتاقیش اذیت نشه. آدم تکون میده دیگه. یا مثلا فرض کنید وارد میشه. برای خود من پیش اومد خدمت استاد. صبحی زود میرفتیم خدمتشون درس میگرفتیم. آن صبح خدمتشون بودیم تا نزدیک آفتاب. بعد از آفتاب تا درامی افتادیم بریم دانشگاه درسمون رو بگیریم. یه روز افتادم خدمتشون دیدم که این در درد که وا پشت در یه چند زنبیل اساسیه توشه. که دیرو عصر رفتم یه چیزایی تو بازار بخرم. اصال زندگیم یه چیزی به ذهنم زد تصیم گرفتم همینجا باشی شما صبح میایی برات بگم گفتم امروز چی میخواد بگی استاد گفت دیروز من رفتم بازار یه که دیدی خریدم تو راه ای به ذهنم زد گفتم من دارم 50 تومان 100 تومان قضیه مال 20 سال قبله که حالا تومان 100 تومان ارزش داشت 50 تومان 100 تومان امروز میخوام تو بازار خرج کنم ای رو بخرم سه تا مغازه قیمت میکنم که 5 تومان کلا نره ببشید پنج ریال کلاه سرم نره به اختضی پنجاه اومد. و اینا مقلایی دیگه اخه من پنج ریال بیخ چرا هدر بداد؟ یه دفعه به خودم اومدم بعد وقت پنج ریال رو برای این که هدر ندی پنج تا مغازه سر میزنی عمرتو چیکار داری میکننی؟ به چند تا عالم سر زدی بگیین جویی که زندگی میکن خوبه یا نه. تصمیم گرفتم این که به ذهنم زده فردا صبح تو میای به بگم بیایم کمک هم دیگه باشیم پیششون به با ما میفرمودم. که یه کاری بکنیم. این پنشتا مغازه ای که آدمیت توش جلوه میده ولی تعبیر مغازه غلطا من الان اینجوری میگم تا فروشگاهی که پشت ویترین کسی استاده که میگه تو ویترین من آدمه برم پیش اینا بگم آقا چی کار کنم خب این مقدار وقت میخواد یه مقدار تلاش میخواد جویندم یا است. ما بخواییم در حالات اتار نوشتم اتار یا اتاری داشت چی شد یه دفعه رها کرد میگه یه پیرمردی تو صف مراجعه کننده دکتر علفی بود از تاریخ خیلی هم سر یه پیر پیرمردی اون گوشه نشسته جمعیت اومد رفت اومد رفت اومد رفت آخرش شب شد آقا جون شما با این کاری نداری گف چرا گف خب چه نمیدی گون جمعیت راه نمیده گف حالا بگو گف اومدم به شما بگم با این مشغله چجوری میخوای بميري گف این تا حالا منو معطل کردی این تا حالا معطل بودی گف ولی بله سوال مهمه گف همون جوری که همه میمیرن گو حاضر که همه میمیرن گوبل گوب ببین بقیه چجوری میمیرن رو به قبله دراز کشید ان لله و ان الیه راجعون شد مرد این یکس برجستگان بود مرگش رسیده بود میخواست بمیره در این استعداد دیده بود میخواست تکونش بده آقا این عوض شد دیگه چکن خوب بعضیا کجا ما کجا هستیم یه مقدار بگردیم یه مقدار هم این ناله ها برای حرفاست خدایا تو مسیر ما قرار بده ما ببینیم ما برخورد کنیم این دیدنها انسان رو به یک جاهای دیگه میرسونه پس راه ایجاد این نظر چارتا کردن یک مطالعه کتب مربوطه با راهنمایی افراد مطلع دو مجالست افراد این چنانی تلاش کنیم بخوایم تا در این نشست سه خضر ره داشتن تیه این مرحله بی هم رهی خضر مکن ظلمات هست به از خطر تنهایی منظور از خضر ره داشتن چیه خضر ره ما به صورت کامل مطلق وجود مقدس امام عصر علیه السلام ما این باور رو داشته باشیم ناظره بر اعمال ماست رمخار ماست صاحب اختیار ماست گر گدا کاهل بابد تقصیر صاحب خانه چیست ما بخوایم حضرت انایت میکنه ما نمیخوایم که حضرت انایت نمیفرماد این بحث دیگریه صادقانه علامه هلی خواست اما خواست چگونه وقتی میبینه مکتب امام زمان در خطره کتابای مربوطه رو جمع میکنه میخونه مین ویسه میخونه مین ویسه یه کتاب رو بهش آدرس میدن فلان عالم داره به کسی هم نمیده این کتاب لازمه اون من خیلی متاسف اهل سنت اجازه نیست کتاب به شیعه بده علامه حلی زمان مثل مرجع تقلید وقت با لباس مبدل کارگری میره در خونه این آقا زحمت کشیدن که دستشون رو گرفتن میاد در خونه ای آقا آقا من به عنوان کارگر حاضرم براتون کار کنم شباتو کتابخونه شما بخوام بش شباتو کتابخونه میخوام روز کار میکنه شب بیدار میمونه از روی نسخه با دست مینویسه چند روزی گذشت مختصری یکی کتاب مونده تموم نشده متوجه شد که صاحبخونه فهمیده دیگه خطرناکه امشبم بیشتر وقت نداره بابا هر چه توان دارم تون تون مینویسم گفت خدایا کتاب تموم نمیشه ساب فهمیده صبحم باید دره گریش گرفت خسته بود خوابش بود خوابش برد. یه دفعه بیدار شد وای صبح شده خیلی متاسف چرا من خوابم بردی کتاب نیمه کارمون اومد سر نوشته دید تموم شده آخرش هم امضا شده حجت ابن درس یاری نمیکنن کمک نمیکنن یک خضر رهوست دو از او بخواهیم که خزرهای رهی را که او تعیید میکند برای ما مثل این آقایی کردم رفیق ما میاد در خونش در میزنه وشی میگه بیا منطقه از ما خواستن و تلاش. این در قسمت نظری قضیه که این قسمت یک کمی هم حرف داره اجازه بدید امشب کافی باشه راه عملیش فردا فرداشه پس نظری گفتم اگه ما میخوام راننده بشم اجمالا بلد باشم فرمون کدومه فلاش کدوم دنده کدوم ترمز کدومه اینه ولد باشم عملی خودم یه مقداری بغلست کسی بیشنم اون میره منم دنبالش حرکت بکنم بغلستم نشسته کنارش را برم این عملی ها اگر عمری بود انشاءالله فردا شب بحث میکنیم اونایی که این معانی رو در سیره اعمه علیه مسلم در زمان زندگی اعمه علیه فهمیده بودن یا در غیبت کبرای امام زمان علیه السلام هم فهمیدن میبینیم وای میستن آقا مثلا راز چهل شب مسجد سحله رفتم کیه؟ یک کمی دقیقه بفرمایید چهل شب مسجد سحله چهل شب مسجد مثلا جمکران ممکنه بعضی ها بگن که خب آقا این آقایی که میخواد شب چهلون به ما بده خب شب دوم بده دیگه مگه ما... او براش کم نمیاد میخواد شما ظرفیت دارید یا نه یکی از دوستان دانشگاهی ما اقضیه مال خیلی قبله تعمید من خدمت مثلا یه بندی خدای رفته آمد دارم گفت آقا یه روز وقت بگیر ما هم ببر خدمتش. مثلا بیا بریم. رفتیم خدمت اون آقا خیلی قبله. ایشون گفت که آ شبها تا دو هفته مثلا این غذا رو فقط بخور و صبح هم اینقدر ورزش کن. ایشون خود خیلی هم ادعاش می‌شد که آ ما بالاخره کسی هستیم و کتابی نوشتیم و کتابی خوندیم و اومدیم بیرون همچین سری جنبون که نه چنگی به دل نزد. ما اومدیم والا مثلا ایشون انتظار داشت خیلی هندونی زیر بغلش بذارم من چون فهمیدم گفتم برگردیم خدمت آقا برگشتیم رفتیم خدمتشون گفتم ایشون یه اشکال داره نسبت به این تد شما اوم فهمید که چی مخوام بگم گو من اگر بناس بیای حرکت کنی مثلا طرس کنی یک شرطش اینه که بنده بگم حتما باید نیم ساعت مونده به اذان صبح هر شب بیدار بشی شما که حاضر میشید دو هفته از قضاوت بزنی چجوری میتونی این کارو بکنی شما که حاضر مثلا میگم هر روز صبح باید 300 ورزش کنی شما که این توان جسمی رو نداری تا میای دو رکعت نماز بخونی دهن کاری میکنه که اون ذکری هم بخوای بگی یادت مری چی داری میگی این که نمیکنه توی وادی قرار بگیره یه مقدار از بعدی چیزا ان شاءالله میباشین دو سه شب راجبه تحلیه تخلیه تجلیه در راستای تزکیه که خیلی هم حرف زدن بزرگان بحثی خواهم کرد ان شاء الله خب اینا یه نقار استادیگی میخواد اونایی که این معانی رو فهمیده بودن خم به ابرو نمی آوردن پشت سر ایمر حرکت میکردن شما میشنوید عمار یاسر به کجا میرسه عمار یاسر چجوری تابع امامش میشه کمیل چجوری تابع امامش یا امثال جابر جعفی چجوری و دیشبی اشاره پریشب بود این اشاره رو خدمتون داشتم که وقت این ایام اون اصحاب بزرگوار اعمه چه به دلشون میگذره در روز در آشورا یک اعدادی از این بزرگواران که در خدمت عبدالله علیه السلام بودن امثال حبیب ابن مظاهرها اینا از این تیب افراد بودن بعضیشون جز اصحاب سر بودن یعنی یک مقاماتی رو تکی کرده بودن که این لیاقت ها رو هم خدا در این سفر شامل حال اونها میکنه اون وقت مگه اگر, اگر نباشه خب شیای دیگه حتی اونها نسبتاً از بزرگا بودن اما از کوفه نتونستن خودشونو به کربلا به امام حسین برسونن نرسیدن اما حبیب ابن مظاهر مرد نزدیک 90 سال بر هر قیمتی بود خودش از کوفه به کربلا رسون لشکر عبی عبدالله که محاصره محاصره بود گرد تا گرد لشکر عبی عبدالله رو لشکر کوفه گرفته این پیره نزدیک نوت سال از کوفه میاد این لشکر رو کنار میزنه میره تو دل سپاه عبی عبدالله میگه آقا منم اومدم تر خدمت شما نمیخوام از این کاروان عقب بمونم حالا میتونست یا خیلی های دیگه به هر حال اونایی که این معانی رو توجه و پیدا کردن دست از در خانه اعمه برنوشت در دوران حضور یه جور دست زدن در دوران زیبت یه جور دیگه چنگ زدنه که انشالله تو بحث‌های عملی اگر عمری باشه از خواهیم کرد خب والا صحبت کربلا شد و اجازه دیدیم شب هم از کربلا بگیم کربلا یکی نمیدونم مثل چی بگم واقعا نمیدونم چی بگم ما خودمون تو همین سفری که توفیق حاصل شد تعبیری که برای رفقا داشتن می گفتم این آتش اشخ حسینی کاری کرده پیر جوان بچه بزرگ زن مرد با سواد بی سواد نمیشنست یادم نمیره یک پیر مرد اونقدر زعیف قدها خمیده می لرزید که بعد من اینو کردم که اومدم باشم حرف زدم گفت یه رستاییم یه تعدادی گسفند داشتم تا گفتن میشه شه رفت کرولا رفتم همه گسفنده هم پروختم اومدم کربلا حالا چی شد این پیرمرد منو گرفت که من بعد از حرام علی عبدالله تعظیمش کردم دیدم که من هیچ پایه بودم اسم دخول می‌خوندم اجازه بگیرم برم تو دیدم این پیرمرد چادر سپاه پا رو همینج سینه خیز سینه خیز از یه ای ایوون آورد تا به زری به زری که رسید یک چند تا تو سرش زد چند بار عین حاجی که طواف میکنه زری رو تو می کرد. اما چی میگفت با همون لرزان لرزان میگو آقا جون راست میگن که سر تو جدا کردن آقا حالا یه جوری میگفت باور کنید هیچ روزی آدم اینجور آتش نمیزد آقا راست میگن که علی اصغرم رو دل شما دفن شده آقا راسته که علی از خرم تشنه بود از تشنگی آقا راسته که فرق علی اکبرت حالا اینا رو میگفت دور میجست بعد میگفت بله آقا چطور راست نباشه من الان دارم میشنوم که این صدا این کرده با دل یک پیر مرد اون سر روستای کجای ایران گفت چهارت گوسفند من فروختم اومدم داره با امام حسین این دل داده شده به اینها و وقت دل داده بشه خب میتونست بگه من پیر مرد مثال چجوری میتونم بیام تو هرم امام حسین اما دیگه سر از پا نمیش نسه اما این کربلایی که همه یه جهاتش عجیبه اون قلام سیاه هم اومد خدمت هر یرد آقا جان جون. به من اجازه میدی من که یه غلامم سیه چهره هم. من که با اینا قابل مقایسه نیستم حضرت پرموده باشن مگه اینجا از یه عرف هاست از ها نیست این غلام رفت ابی عبدالله علیه السلام موقع جندادنش اومد سرش و هم به دامنش گرفت ظاهرا از نظر سیاهی چهره یا سفیدین ارزش نیست اینا که اون باطنه ولی برای اینکه باطن رو بخواد جلبه بده اون لحظات آخری که چشماش دوخ به چشمای امام حسین که آقا خون من سیاه ناقابلم قاطی شد تو خون این اصحاب ارزنده شما حضرت یه اشارهی کردن یه وقتی چهره این غلام سیاه اون انقدر نورانی شد و بدن سفید و درخشان که از نور او فضا روشن شد یعنی وقتی دل حسینی شده ظاهر هم به این صورت جلوه میکنه که خدایا تو را هم به عظمت این پاکان دل ما را نورانی بگردان